وینستون چرچیل میگوید: موفقیت توانایی گذر از یک شکست به شکست دیگر بدون از دست دادن اشتیاق است. آتش دو از خطاها به بینشها موفق نشو. در دهه 1970 سه جوان که یکی از آنها ترک تحصیل کرده، این فرصت را یافتند که پول در بیاورند. آنها در مسیر انجام دادن کاری قرار گرفتند و شرکتی تأسیس کردند که با مهارت اطلاعات ترافیکی سامانه تردد شمار را تحلیل می کرد و نام فریبنده و شرکتی تراف اودیتا را برای کسب و کار تازه خود برگزیدند آیا کسب و کارشان با شکست مواجه شد اگرچه آنها سخت افزار و نرم افزار مناسبی فراهم کردند، سرانجام تنها با کسب چند هزار دلار به سرعت شکست را پذیرفتند و در کسب و کار نوپا را تخته کردند. کارشان به شکست انجامید. اما این خوره های وسایل الکترونیکی از آن کسب و کار شکست خورده به بینشی عمیق و چشپیر درباره رایانه و توانایی واقعی آن دست یافتند. دو تن از بنیانگذاران با تکیه بر آموخته‌های خود از تلاش ناموفق قبلی، شرکت کوچک و نوپای دیگری راه‌اندازی کردند و این بار نام فریبنده مایکروسافت را برگزیدند. پول آلن و بیل گیتس به نماد بهرهبرداری از شکست و اشتباه در یافتن مسیر درست تبدیل شدند. شکست واژه‌ی زننده‌ای نیست. در جامعه ما شکست یک واژه چهار حرفی آزارنده است. نگرش عمومی اجتناب از اشتباه آشکارا غلط است و پیامدهای زیانباری دارد. ذهنیت زیانبار بودن اشتباهات اغلب ما را به بیتحرکی دچار می می‌کند. اگر به این نگرش سالمتر توجه کنیم که شکست معلمی توانا و ایستگاهی معین در مسیر موفقیت است، چنان رها می‌شویم که می‌توانیم با سرعت بیشتری پیشروی کنیم. زیرا اشتباه اقدامی است که به یقین میتوانیم هر زمانی مرتکب شویم. اگر گرفتار شده باشید اشتباه میتواند دقیقاً عامل رهایی بخشتان باشد. هر دستاورد خلاقانه از درسهایی شکل میگیرد که از توالی بلند گامهای نادرست آموخته ایم. شکست جزء اساسی یادگیری و آموزش موثر و حل خلاقانه مسئله است. اشتباهات توجه ما را به روش های مفید جلب می کنند زیرا ما را وادار به تمرکز بر این وظیفه خاص می کنند که دلیل شکست تلاش مورد نظر را بررسی کنیم شکست مؤثر گام مهم و مثبت به سوی موفقیت است و در مورد ماکروسافت حتی سوداور توجه به شکست به مسابقه فرصتی برای آموختن به ذهنیت تازهی نیاز دارد زمانی که مرتکب اشتباه شوید، می بپرسید چرا اشتباه بود. اکنون در مسیر درست قرار گرفته اید و با مشکل اصلی دست و پنجه نرم کنید. دانش آموزان باید مسیر آغاز با شکست و پایان با موفقیت را پشت سر بگذارند. معلمان باید قدرت شکست را ارج نهند. و آگاهانه الهام بخش دانش آموزان در فراگیری توانمندیهای های بلقوه سودمنده اشتباه کردن به منزله گام های مهم به سوی فهم باشند. روش برانگیختن تفکر مؤثر نه بار شکست بار دیگر که با چالشی دلهور آور مواجه شدید به خود بگویید برای حل این مسئله باید نه بار شکست بخورم اما در نوبت دهم ده موفق می شوم این نگرش شما را نجات می دهد و به شما امکان می دهد بدون ترس از شکست به شکل خلاقانه فکر کنید. زیرا فهمیده اید که آموختن از شکست گامی به سمت موفقیت است، خطر کنید و هنگام شکست دیگر فکر نکنید. مثلا، اه نشد چه اطلاف وقت و انرژی ناامید کننده ای بلکه از گام نادرست خود بینش تازه ای حاصل کنید و به درستی فکر کنید مثلا بگید محشر است یک شکست اما نه فرصت دیگر برای ادامه کار دارم تا پیشرفت کنم و در واقع همین طور است پس از شکست اول به خود بگویید؟ آلیه ده درصد کار رو انجام دادم اشتباه، باخت و شکست همه مانند چراغ قوه آشکارا راه فهم عمیق‌تر و راه حل‌های خلاقانه‌تر را به شما نشان می‌دهند. مثال واکنش نویسنده ما خود را معلمان تفکر مؤثر می‌دانیم. به معنای دقیق خود را چنان ملزم به شکست می‌دانیم که آن را ارزیابی کنیم و به آن پاداش دهیم. در کلاس‌های ما پنج درصد نمرات ترم دانش آموزان مبتنی بر کیفیت شکست آنهاست. می خواهید در کلاس ما بالاترین نمره را بگیرید؟ بهتر است به شکست مفید عادت کنید. یعنی از تلاش های منتحی به شکست درس بگیرید. هر خطا مانند معلم است که درسی می دهد. هنگام اندیشیدن به مسائل هنوز حل نشده زمانتی برای زمان دستیابی به جواب وجود ندارد شاید جوابهای ناشناخته ها با ما فاصله داشته باشد یا همین فردا از دستیابی به آنها شگفت زده شوید نتیجه اخلاقی این فصل اشتباه جزء مهم تفکر ناب و شکست جزء مهم شالوده است که موفقیت را بر آن بنا می‌کنیم مایکل جوردن می گوید بیش از نه هزار پرتاب را خراب کردم. تقریبا در 300 مسابقه باختم. 26 بار برای پرتاب توپ تعیین کننده برنده بازی انتخاب شده ام و خراب کردم. بارها و بارها در زندگیم شکست خورده و به این دلیل است که موفق بودم. اگر به ارزش مثبت شکست پی ببرید می فهمید که شکست سمر بخش دو مرحله اساسی دارد. اشتباه کردن، و بهره برداری از اشتباه در این فصل از شما می خواهیم به هایی از شکست که به موفقیت منتهی میشوند توجه کنید مثلا تا میتوانید برای رسیدن به جواب درست تلاش کنید و اگر با شکست مواجه شدید جنبه های خاص شکست خود را جدا کنید راه دیگر این است که سنجیده کاری را که میدانید اشتباه است انجام دهید تا نقصها را با دقت تشخیص دهید و شناسایی کنید هر یک از اشتباهات را تحلیل کنید تا دلیل اشتباه بودن آنها را بیابید و ببینش تازهی برسید که شما را به مسیر درست هدایت کند. دست آخر اشتباهات را بسنجید و ببینید آیا تلاش ناموفق میتواند جواب مسئله دیگری باشد یا خیر؟ <تصفيق> به گامهای نادرست و تصادفی خوش آمد بگویید. اشتباهات را راهنمای خود قرار دهید. اشتباه منبع فوق‌الاده بینش و راهنمایی است زیرا موضوع تفکر شما را شکل می‌دهد این رویکرد اشتباه است زیرا هنگام پر کردن جای خالی خطای راهحل حل فعلی را بیابید این فرایند فعالیت اندیشیدن به راهحل درست را که در این لحظه از آن خبر ندارید به فعالیت اصلاح اشتباهات که غالباً مرتکب می‌شوید تبدیل می‌کند ماری ریاضی تمرین می‌کند. ماری دانشجوی سال اول هنر و ادبیات در برنامه فوق دانشگاه تگزاس بود. از بد اقبالی او، برنامه فوق لایه حاوی پیشنیاز ریاضی بود و ماری مجبور بود در کلاسی با عنوان ریاضیات جدید ثبت نام کند. او در کلاس من استاربرد نام نویسی کرد. ماری به همراه بسیاری از همکلاسی‌های خود تنها به یک دلیل در این کلاس حاضر شده بود. مجبور بود. او در بسیاری از کارها فوقلاده بود اما به ریاضیات علاقه نداشت. در واقع از ریاضیات متنفر بود. جای تعجب نبود که عمدتا از بحثهای کلاس کنار گیری میکرد. به قول خودش فقط به انجام دادن اقدامات غیرلازم لازم تظاهر میکرد و تکالیف را تحویل میداد تا به سرعت از شر قضیه راحت شود. این روی کرد نباید موجب رنجش معلم باشد. زیرا ماری امیدوار بود معلم نیز اهداف خاص خود را در کلاس دنبال کند. یعنی به جای ایجاد نوکیشان ریاضی دوست تجربهی در اختیار دانشجویان خود قرار دهد تا زندگی آنها را در تحصیلات رسمی و فراتر از آن به شکل مثبت دگرگون کند. داستان ماری چنین بود. یک روز هنگام بحث درباره مفهوم بی نهایت موضوعی انتظائی و دور از انتظار که حتی برای دانشجویان پیشرفته ریاضی هم چالش برانگیز است سؤال عمیق و هوشمندانه‌ای تر کردم میدانستم این سؤال از توانایی دانشجویان کلاسم فراتر است بنابراین به آنها گفتم قادر به ارائه جواب کامل سؤال نخواهند بود با وجود این از آنها خواستم با تمام قواب آن فکر کنند به آنها توصیه کردم در قالب گروههای کوچک درباره سؤال بحث کنند پس از سه دقیقه به بحث ها خاتمه دادم و منتظر شنیدن ایدهها شدم به عنوان یک قاعده به جای درخواست از داوطلبان به روش بازاریابی ناخواسته عمل کردم و داوطلب را خودم برگزیدم و انتخاب آن روز من ماری بود واضح بود که ماری از شنیدن نامش خوشحال نمی نمی‌شود وقتی از او جواب خواستم پاسخ داد نمیخوام بگم چون میدونم اشتباهه من با لحن تشفیق آمیز و حمایتگر با او موافقت کردم یقیم دارم اشتباهه با این حال میخوام بشنوم. سپس او با اکراه و نگرانی فراوان نظر خود را توضیح داد در این حین من نیز راه حل او را روی تخت نوشتم پس از خاتمه سخنش از او تشکر کردم حق با تو بود راه حل تو اشتباهه کلاس قرق خنده شد و حتی ماری هم لحظه لبخند لبخند زد اما پیش از اینم بهت گفته بودم که کسی جواب درست رو پیدا نکرده ماری خطای جوابت رو به من نشون بده ماری با سرعت و وضوح نقطه جا افتاده در جواب خود را نشان داد او را تشویق کردم عالیه چطور میتونی راه حل ناقصت رو کامل کنی طوری که نقص مورد نظر برطرف بشه او با شهامت خطر کرد و پرسید میشه؟ و اصلاح کوچکی در راه حل اصلی خود پیشنهاد کرد که نقص را برطرف میکرد. آلیه، ماری راه حلت درسته؟ و او به سرعت جواب داد نه. آلیه، خب ماری، خطای جواب فعلیت رو به من نشون بده. او این کار را انجام داد. آلیه، حالا راه حل رو اصلاح کن و نقص ها رو تا اونجا که میتونی برطرف کن. او با انتخاب روشی که به اصلاح نقص اول متهی شد به سرعت چند نقص دیگر را برطرف کرد و جواب اصلاح شده را برای کلاس توضیح داد علی ماری حالا راهحل درسته؟ و او پیروزمندانه جواب داد بله اما ناگهان دانشجوی دیگری برخاست و اشاره کرد هنوز نقصهایی در راهحل وجود دارد ماری پرسید چه نقصهایی؟ یا چیزی شبیه این؟ گفتم خب ادامه بده خطا رو پیدا کن و اصلاحش کن پس از پنج نوبت تکرار فرایند یافتن و اصلاح خطا ماری فهمید که به جواب درست و کامل نزدیکتر شده است برای بار ششم پرسیدم حالا راه حل درسته؟ ماری با اعتماد و قرور فراوان جواب داد بله درسته و راه حل درست بود البته راه حل مبتکرانه او با جواب معیار کتاب درسی ریاضی از جمله کتاب درسی ما متفاوت بود ماری ایده های خود را برای جواب دادن به سوال ابدا کرده بود سهم من این بود که از او بخواهم حدس بزند صحت حدس را بیازماید به دنبال نقص راه حل باشد نقص را برطرف و دست آخر فرایند را تکرار کند پس از کلاس ماری سراغ من آمد و گفت پس از تمرین رفت و برگشت کوچکمون حسابی گیت شده است او درگیر مقاله‌ای بود که باید برای کلاس زبان انگلیسی مینوشت اکنون دقیقاً میدانست چه کند. کافی بود پیشنویس بسیار بدی بنویسد و سپس نقصها را پیدا و اصلاح کند. کار معینی که یقیناً از احدهی انجام دادنش برمی او می اشتباه کند و از این رو احساس رهایی می‌کرد. داستان ماری ما را به تفکر وامی دارد. او مسئله سختی را حل کرده بود که از هر جهت فراتر از حد توانایی بود. او از شیوه ای برای تفکر استفاده کرده بود که سرانجام او را به فردی خلاق، مؤثر و موفق تبدیل می کرد. در حل این چالش ریاضی ابهام یا عدم قطعیت وجود ندارد او یقیناً بدون کمک قادر به حل مسئله نبود اما کمک از جنس ریاضیات نبود کمک کاملاً مبتنی بر نحوه استفاده از ذهن او بود و البته می خودش نیز از این شیوه استفاده کند تلاش کند نقص را پیدا و آن را برطرف کند باز تلاش کند او میتوانست آموزگار خود باشد علاوه بر این میتوانست از این روش در هر کار دیگر دلخواه خود بهره گیرد ماجرای ماری عبارت است از راهبرد خاص عملی کاربردی و گسترده در تفکر یادگیری و آفرینش مؤثر دانشآموزان و مشاهیر موفق در سر و سر تاریخ از این راهبرد بهره گرفتند و شما نیز می توانید از آن بهره بگیرید. گام های نادرست در تاریخ چرا سخنرانی، موسیقی، هنر، معماری، نرمافزار، کتاب و نمایش همه به پیشنویس نیاز دارند؟ زیرا شکسپیر تا قبل از خواندن اولین پیشنویس ناقص کار خود نمیدانست چه چیزی در دانمارک پوسیده و فاسد است. زحف تلاش اول ما مانند نقاط قوت آن پیش از شکلگیری وجود ندارند تا بتوانیم به ارزیابیشان بپردازیم. کشف خطاها به کشف اصلاحات منتهی شود. وانگهی نمونه ها غالباً ویژگی قدرتمند غیر دارند. با تکرار میتوانیم آنچه هست و نحوه اصلاح آن را مشاهده کنیم. تنها به زمان نیاز داریم. در 8 دسامبر 1941، فرانکلین دناول روزولت یکی از مهمترین سخنرانیهای دوران ریاست جمهوریش را در کنگره و خطاب به مردم آمریکا ایراد کرد. اولین سطر سخنرانی او چنان قدرتمند بود که بسیاری هنوز آن را به خاطر دارند. دیروز هفتم دسامبر 1941 روزی که به رسوایی از آن یاد خواهد شد، نیروی دریایی و هوایی امپراتوری ژاپن ناگهانی و آمدانه به ایالات متحده آمریکا حجوم آورد. این واژه‌ها که به دقت انتخاب شده بودند، به هیچ وجه فلبداه نبودند. آنها نتیجه پیشنویسی تایپ شده بودند، پیشنویسی که روزولت خود آن را ویراسته بود. نمونه اولیه به این صورت بود. دیروز 7 دسامبر 1941 روزی که در تاریخ جهان ثبت خواهد شد، نیروی دریایی و هوایی امپراتوری ژاپن همزمان و آمدانه بدون اختار قبلی به ایالات متحده آمریکا حجوم آورد. سخنرانی‌های بزرگ زمانی بزرگ می‌شوند که در وهله اول از فرصت خیلی بزرگ نبودن برخوردار باشند. جیمز جویس می‌گوید خطاهای انسانی معابر کشفهای اوست پیشنویسهای اولیه تنها به نویسندگان تعلق ندارد توماس ادیسون به روی کرده رشدیابنده خود در اخترا بانیت قبلی مشهور بود راهی را امتحان کن ببین کجای کار میلنگد از نقصها درس بگیر دوباره تلاش کن منظورش از این گفته که اختراع یک درصد الهام و 99 درصد عرق ریختن است فرایند گام به گام اشتباه کردن و درس گرفتن از اشتباهات و تلاش های بد بود که سرانجام به راه درست نزدیک شود. زمانی از او پرسیدند در مورد شکست های بیشمار خود برای ساختن لامپ چه احساسی دارد و او جواب داده بود من شکست نخوردم فقط ده هزار راه یافتم که درست نبودند موفقیت به معنای پیشروی همیشگی نیست. اگر در 60 درصد موارد شکست بخورید چه احساسی پیدا می‌کنید؟ آری، شاید در برخی ها یک ستاره باشید. بازیکن حرفه‌ای لیگ بیسبال که در 60 درصد دفعات ناموفق است، یعنی متوسط پرتاب‌های موفق او 40 درصد است، بازیکن خارق‌العاده‌ای محسوب می‌شود. هیچ بازیکن زنده‌ای در حال حاضر اینقدر خوب نیست. بنابراین در بیسبال هر بازیکنی در بیش از نیمی از دفاعات ناموفق است در پژوهش‌های ریاضی و علمی متوسط مورد نظر به شکل چشمگیری باز هم کمتر است اگر دانشمند یا ریاضیدان در سراسر سر زندگی خود حتی به یک سؤال مهم پاسخ درست بدهد به شایستگی مورد توجه و احترام فراوان قرار می گیرد موفقیت یعنی پافشاری بر فرایند مکرر شکست و دست گرفتن از آن بسیاری از حکومت ها در سراسر سر دنیا از قانون اساسی آمریکا تقلید کردند اما چند درصد از مردم به یاد دارند که قانون فعلی ویرایش دوم است اولین تلاش پدران بنیانگذار در حکومت یا به عبارت دیگر مواد لایحه کنفدراسیون به شکست انجامید این نمونه تلاش برای ساماندهی ایالات تازه استقلال یافته آمریکا بود قانونگذاران هنگام نوشتن قوانین آنها را به منزله معیارهای گذرا که جای خود را به قوانین بهتر بدهد تصور نمیکردند. قانونگذاران به دنبال حکومت بلند مدت بودند با وجود این نقص قوانین بینش های ارزشمندی فراهم کرد که سرانجام به قانون اساسی ایالات متحده منتهی شد و البته قانون اساسی با ارزش ما نیز اصلاحاتی دارد که هر کدام نقصی را برطرف می کند، و بهبود ایجاد می کند دستیابی به یک راه حل و تشخیص محدودیت آن به راه بهتر می انجامد. لینوس پاولینگ می گوید، راه دستیابی به ایده های خوب جمع‌آوری ایده های فراوان و حذف ایده های بد است شاید نحوه انجام دادن کار درست را ندانید اما به یقین می راه درست ایجاد اشتباهات مفید این است که با ارائه سریع بهترین راه حل که بدون تلاش یا با تلاش ناچیز به دست آمده باشد با مسئله دست و پنجه نرک کنید مانند جادو ناگهان تعداد زیادی از خطاهای مفید ظاهر می شوند در ادامه به روش های عملی خلق ایده ها اشاره می کنیم روش برانگیختن تفکر مؤثر. به صفحه سفید خیره نشو. مسئله را در نظر بگیرید. مثلا می برنامه ریزی کنید یا طرح کسب و کار بنویسید یا نمره آزمونتان را بهتر کنید یا مقاله‌ای بنویسید و یا از زندگی بهره بیشتر حاصل کنید. سندی خالی در رایانه خود باز کنید. حالا به سرعت هر ایده‌ای درباره مسئله دارید، خوب بد، نادقیق یا مبهم تایپ کنید. در ثبت ایده ها یا عبارت های نچندان درست تردید نکنید هیچ کس جز شما قرار نیست نوشته شما را بخواند. ایده های شما از جهات متعدد بسیار بد است آنها نامنظم و به همریختند نادقیق یا صرفا اشتباهند غیر عملی و دل سرد کنندند به حل مسئله نزدیک نمی شوند و مبتکرانه نیستند تبریک می گوییم آغاز فوق‌العاده‌ای است. شاید به نظر شما نوشتن ایده‌های بد شروع با ارزشی نباشد، اما یک نکته روشن است. نوشتن ایده‌های بد کاری است که از عهده هرکس کس هرکس هر کس در هر زمانی می‌تواند نامه، گزارش، مقاله یا داستان افتضاح بنویسد. هرکس کس می‌تواند روی خاص نادرست درباره مسئله را روی کاغذ بیاورد. این نوعی چالش نیست، اما آخر کار هم نیست. اکنون نوشته خود را بخوانید و بر دو جنبه تمرکز کنید. چه چیز درست و چه چیز نادرست است؟ اگر ایده های خود را بدون نگرانی از درستی، ساختار یا ظرافت آنها بنویسید، افکار شما درباره موضوع غالبا آزادانه و شفاف از ذهن شما جاری می شود. ایده هایی که می بیانشان کنید درون شماست. بنابراین اگر بدون نگرانی درباره اشتباهات بنویسید با این نکته جالب مواجه می شوید که اغلب آنچه واقعا قصد گفتنش را دارید می نویسید شما حقایق ناتمام را چون در و گوهر غیر منتظر به زبان می آورید اکنون کاری هست که انجام بدهید می توانید اجزای مفید را استخراج کنید چه بسا گزاره یا ایده های خوب و قوی پیدا کنید چه بسا را به زبان آورید که نشانه مفهوم زمینی جالبیست است. بسا به این مطلب پی ببرید که جزء اصلی ایدهی که در حال بیان آن هستید برای شما روشن است جستجوی جنبه های مفید در تلاش ناقص اول شما اولین گام بزرگ به سوی کار با کیفیت و مبتکرانه است حال ببینید آیا می توانید خطاها را تشخیص دهید و از آنها بهره برداری کنید اگر اقدامی نابناسب باشد غالبا به سادگی میتوان خطاها را پیدا کرد اکنون کاری دارید که انجام بدهید مثلا خطاهای آشکار شده را اصلاح کنید دیگر به امید تحقق معجزه آسای جواب کامل به صفحه سفید رایانه خیره نمی شوید. شما ایده های خلق کرده اید و هر جا درست نباشند آنها را حذف می کنید شما به جای کار غیرممکن آفرینش راه حل کامل به سراغ کار آسانتر استخراج جواهرات و اصلاح خطاها ها رفته اید. شما اکنون کاری متفاوت انجام می دهید. مثلا اثری روی بوم خالی خلق نمی کنید بلکه به اثر از پیش موجود واکنش نشان می دهید. واکنش شما نیز خود به ایده های تازه می انجامد که پیش از تولید اشتباهات پیش نیاز، قادر به خلق آنها نبودید هنگام اجرای این روش باید مطمئن شوید برای تکرارهای مورد نیاز زمان کافی دارید بنابراین باید تلاش خود را از قبل آغاز کنید یعنی نمونه افتضاح بنویسید تا آنجا که تکوین و تکرار لازم به اثری آراسته منتعی شود که به آن افتخار کنید پس به سرعت آغاز کنید مثال این کتاب، شما نتیجه کاربورت های متعدد این تمرین را در دست دارید.